عوض بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ذکر صلاباتی داشته باشیم، تقدیم بر محمد و عالم محمد و شروع کنیم در دعای رماره اول از امام سجاد علیه السلام، وزامین بسیار بالایی وارد شده که تو همه اونها حضرت حمد الهی رو به جا میارن میفرمان که الحمد لله ببینید شروع دعا با حمد الهی هست اصلا خود دعای اول هم مربوط به خدا و حمد خداست این خودش یک به طبیر آقایون یه سیگنال میده به ما یعنی اول دین خداست هر کاری در مورد دین بخوای واردش بشی اولش خداست یه وقت کسی جای خدا رو نباید بگیره ابتدا خداست لذا اول دعاها اولین دعا و اولین تعبیر الحمدلله الاول جالب الاول خود تعبیرش هم الاول ببینید الحمدلله الاول خدا اوله بعد مضمون بسیار جالبه یه وقت اشتباه نکنیم با اولهایی که بین خودمون هست این رو هم مثل هم بگیریم تشبیه به هم بکنیم از حفظ که الحمدلله الاوله بلا اولن کان قبلهو این اول کسیست که اولی قبل از او نیست ول آخر در این اول بودن همون آخر هم هست دیگه در بین ما ها کسی که اول هست ممکنه یه وقت اول دیگری فردا باشه امروز من اول وارد اینجا شدم فردا کسی دیگه ای اول وارد اینجا میشه وقتی من اولا دیگه آخر نیستم معنی نداره ولی خداوند اولیست که در این اول بودن آخر هم هست و آخره بلا آخرین یکون و او. این آخریست که بعدش کسی نیست این تعبیر نشون میده که هر چی هست خداست اول و آخر خداست غیر از خدا هیچ چیزی هستند نباید در مخیله ما بیاد الذی قسرت عن رؤیتهی ابثار الناظرین کوتاهه نمیگه نمیبینم میگه اصلا نمیرسه به چشم ناظرین تازه میگه ابصار ناظرین اونیچه کارش نظارته اسم دیگه ان ناظر کسی که کارش نظارته کسی که ناظره کوتاه این نگاهش تا به خدا برسه قصرت ان رؤیتهی ابسار و ناظرین و اجزت ان نعتهی اوهام الواصفین اونایی هم که میخوان خدا رو وصف کنن وهم اونها تصور اونها انقدر قدرت نداره که بتونن خدا رو وصف کنن پس همینجا ما کار رو تمام می‌کنیم. در مورد خدا هیچ کسی انتظار نداشته باشید بیاد حرفی بزنه و خدا رو به اون نهی که هست توصیف کنه نه اجازت ان نعتهی او هامون این تعبیر ابتدایی این دعا هست من اینجا رو خوندم حالا کن بحث ما آشنایی واسعیف است. خطبه ها نیست که واردش بشیم و مفصل بکنیم فقط من میخوام با همین دعای اول دعا ها دعای اول رو به این نفع آشنا بشیم که تعابیر به چقدر مزامین بالا وارد شده دیروز روز کردم. اگر شستی طریقه سجادیه رو با اونان یه دعا بخونه من عوام بگم بله دیگه امام سجاد علیه السلام مریض کربلا بود و یه دعاهایی هم نوشه خدایا ما رو سلامت بدارو و بالاخره ما رو حفظ کنه و آفیت بده نه یکی از منبع های اصلی معارف اسلام اینجا همین دو خط کنان خوندیم میتونه در موردش چندین کتاب نمیشته بشه اوصاف خدا اینکه خداوند چگونه است و رابطه ما با خدا چجوری هست اینها رو از اینها حتما باید استفاده کنیم این دعا رو من دیگه به خود شما واگذار میکنم حتما اینها رو اشالله وارد بشید حتما روزی یک خط از این دعا ها رو بکنیم یه بخشی در این دعا هست گویا این یک خطی که در این دعا هست اشاره به یک مضمون بسیار بسیار والا و مهمی هست از میکنم خدمتتون. ببینید می‌فرماید که ابتدع به قدرتیهی الخلق ابتدعن با عینه ابتدع با عین یعنی به صورت بدیع خلق کرد یعنی بدون سابقه بدیئه یعنی اینکه قبلا نمونه نداشت خلق رو با قدرت خودش بدون نمونه قبلی آفرید بدی آفرید وقتر اهم الا مشیت این اختراعا اونها رو ابتدا بدون اینکه قبلا وجودی داشته باشن از عدم به وجود آورد اختراع کرد خب سم مساله اینجاست اون جایی که ها روش خیلی انایت دارم. ثم سلک بهم طریق ارادته خداوند متعال که ما رو آفرید ما رو در یه مسیری به راه انداخت چه مسیری اگر از شما بپرسیم که هدف از خلقت ما که خداوند متعال رو خلق کرده هدفش چی بوده لابد می که هدف عبودیت دیگه ما خلطتال جنبال انساید لا لیعبدون درسته؟ این یک گام بالاتر از اون رو میگه دیروزم رس کردم صحیفه گام فراتر از خیلی این چیزهاییه که ما تصورش رو داریم می که سلکت بهم یعنی اونها را به پیمایش در آورد حالا لفظ نداریم آیا احمد داریم پیمایان پیم، پیم به راه در آورد توی مسیر به راه در آورد در چه مسیری؟ طریق ارادته ببین؟ در یه مسیری که من بنده یه راهی رو برم چه خدا رو بخوام اراده خدا داشته باشم و بعث هم فی سبیل محبته ما رو مبوز کرد و برنگیخت در راه حب به خودش این دیگه از مرحله عبودیت بالاتر و فراتره یعنی ما اگر دستورات خدا رو اطاعت کنیم عبد خدا هستیم درست جهنمم هم نمیریم خدا هم از ما راضیه مبتقی هستیم بسیاری از آثار و اصاف که برای مبتقین و اینها شمرده شده همش برای ما هست ولی حلی بالاتر اینه. من نه به خاطر فرال از جهنم و رسیدن به بهشت بلکه به خاطر خود حب خود خدا من در مسیر حرکت کنم. این کلام گویا اشاره به همین مطلب داره که خدا اصلا بنده ها رو خلقشون کرد تا اونها رو در سبیل اراده خدا و سبیل محبت نسبت به خدا اینها رو به راه در بیاره این مطلب رو میشه در موردش درس خارج گذاشتن درس خارج های ما فقهیه ولی چه اشکال در روینم در سفارت بزنیم اینا رو بحث کنیم در موردش کتاب نوشته بشه مقاله نوشته بشه و اینها به انتقال دارده ها انتقال داده بشه طلبوان به مردم منتقل کنم که بدونه ما در زندگی اینکه این همه علماء میگن ها گناه رو ترک کنید تقوا داشته باشید تازه این پله اوله پله دوم مخفوله صحیفه این را میگه حالا من یه سوال دارم از شما اینو کجا میخواید پیدا کنید؟ در کدوم کتاب میخواید پیدا کنید. منبع اصلی این نکته به این عظمت همین صحیفه است همون اول کاری دو خط، سخط اول صحیفه دیدیم معارفی توش هست که حالا حالاها جایی پیدا نمیشه پس حیف ما از این کتاب بسیار با ارزش که زحمت کشیده شده علما زحمت کشیدن رو به ما رسوندن حالا جریان مرحوم محمد تقیه مجلسی رو هم من فرصت نشد حالا یه جلسه اینجا عرض میکنم خودتونم بگردید تو فضای مجازی هم هست که این کتاب هستن سالها متاسفانه در پس پرده گم شدن افتاده بود. این کتاب گم شده بود. در دست ما نبود. با این چه گفتم. تا قرن ششم سندش هست. ولی یه چند قرنی متاسفانه محجور شده بود. مجلسی اول. خدا رحمتش کنه. در عالمی از حضرت حجت درخواست میکنه که کتابی بهشون معرفی بشه. حضرت هم میگن برو فلان جا یه کتابی هست. اونو بردار. میگه من رفتم اون کتاب رو پیدا کردم. دیدم همین کتاب صریفه ممتجاد در سلام هست. از اون به بعد به شدت انایت به این کتاب زیاد میشه. حتی در اصفهان این کتاب جلسات درسی داشته. علمای اینو به مردم درس میدادن. کلی شرح و ترجمه و نسخه های مختلف ازش در همون زمان نوشته شده و انشالله الان در زمان ما هم این رونخ پیدا بکنه و طلب ها وارد بشن اینها رو بخونن به مردمم منتقل بکنن بسیار خب ما دست ما همین بود که یه آشنایی با دعای اول و دوم و سوم حاصل بشه که نرسید این فقط دعای اول رو یه بخشیش رو ما خدمت شما از کردیم دیگه انشالله بریش رو شما خودتون حتما مطالعه می‌فرمایید در این ایام مخصوصا ماه که برکات هم بیشتر هست مطالعه شما برکت بیشتری هم خواهد داشت از امام سجاد علیه السلام تغازامندیم به حرمت همین لحظاتی که ما پای چلام ایشون در این صفری بسیار پر برکت صحیفه نشستیم این رو در روز قیامت در نظر داشته باشند و به عنوان یک انایتی دست ما رو بگیرن شفیع ما باشن هرچند خواسته زیادیه ما کار نگردیم فقط چند دقیقی بنده از کردم شما گوش کردید ولی خواست ما اشکام نداره با اون کار ما تناسب نداره با اون شخصیت امام تناسب داره که ای امام بزرگ شما کریم هستید خاندان کرم هستید انشاءالله شفیع ما در روز قیامت باشید و ما رو لحظه ای به حال خودمون تنها نرزارید انشاءالله حضرت امیر علیه السلام از ما راضی باشه فرق مطهر حضرت امیر که شکافته شده و صورت مبارکشون با خون سرشون آغشته ان شاء الله حضرت علی علیه السلام شفیع ما باشم ما رو بپذیرند چی خودشون بدونن صلوات تقدیم کنیم در محضر محمد و آل محمد الله ما شاء الله علی محمد و آل محمد الله